صفحه سد و هفتاد و چهار. مشاهده کردم به جای لباس خودم لباس های که شایسته شاهان و شاهزادگان است و در خوره هم نشینی با چنان شاهصاد است، برایم در اتاق مجاورگرمو بگذاشتند من لباس را برتنگ کردم و در کنار شاهزاده خانم روی جایگاهی که از سطح تالار برجسته تر بود و بهترین فرش‌های ابریشمی آن را پوشانده و بالشهای زربفت هندی برای تکیه دادن روی آن جای داده بودند نشستیم بعد از اندک مدتی خانم از جای خود برخاست و سفرهای بر روی میز غذاخوری گسترد و چندین ظرف که حاوی لذیزترین خوردنی و گوشت لطیف پرندگان بود روی میز گذاشت ما با لذت کامل و اشتهای بسیار که از دیدار یکدیگر حاصل شده بود به خوردن نشستیم و بعد از آن بقیه روز را از گفت و شنید یک لذت بردیم و چون شب فرا رسید اجازه داد که با او در یک بستر به خواب بروم روز بعد شاهزاد خانم به هر طریقی که می توانست سر کرد مجبات خوشنودی مرا فراهم سازد هنگام شب بادی ناب و کهنه روی میز گذاشت و شروع به نوشیدن کردیم تا آن زمان شروفی بدان تعم بونه بودم شاسد خانم هم برای همراهی با من چند جامی از آن باده نوشید. من رفته رفته حس کردم که سرم گرم شده و حالت سستی و مستی به من دست داده بود. در این حالت رو به شاسده کردم و گفتم تو یک عمر خود را اصیر این جن لعنتی کرده ای و خود را از زندگی واقعی محروم ساخته ای. بیا و از این زندگی دست بردار و با من به دنیای آزاد قدم بگذار. شاهزاده در حالی که لبخندش سیمای او را روشنتر کرده بود به من گفت بهتر است در این باره سخن نگوییم چنانچه تو نه روز از مدت ده روز را در اینجا با من بگذرانی و فقط یک روز از ده روز را برای جن در نظر بگیریم برای من چنین زندگی بهترین زندگی خواهد بود من در پاسخ شاهزاده گفتم تو چون از جن میترسی چنین میگویی ولی من که از جن نمیترسم و اهمیتی به او نمیدهم میخواهم تلسم او و آن چرا بر روی آن نوشته است از میان ببرم. بگذار تا جن به اینجا بیاید. اول خواهی دید با او چه رفتاری خواهم کرد. ضربشست خود را به او و تمام جنهای جهان نشان خواهم داد. شاهزاده که از عاقبت کار آگاه بود از من خواهش کرد به تلس دست نزنم. زیرا این تلس وسیلهی خواهد بود که من و او را نابود خواهد ساخت. مستی شراب به حدی بود که نمی گذاشت من به سخنان و راهنمایی های او توجه کنم و حرف او را بپذیرم و سرانجام از روی نادانی و مستی پلگر بر باترست زدم و آن را خورد و به چندین تکه تبدیل کردم در این لحظه رد و بقی زد و تمام به لرز در درآمد و نزدیک بود قصر در هم فروری زد و صدایی چون قرچ رد در همه جا تنین انداخت و سپس همه جا در تاریکی و ظلمت فرو رفت این صدای وحشتناک مستی را از سرم بیرون برد و مرا به حال طبیعی برگرداند ولی افسوس که دیگر خیلی دیر بود و نادانی من اثر خود را بخشیده بود شاهزاده خانم مهربان و نیکخواه بدون که به فکر خودش باشد در حالی که از ترس فریاد میکشید گفت شتاب کن هر چه زودتر خود را از این محلکی دور کن اگر درنگ کنی جان خود را از دست خواهی داد من تقاضای شاهزاده را اجابت کردم و با عجله به سوی دویدم و بر اثر دست پاچگی تناب و تبر خود را در تالار جا گذاشتم. تازه می‌خواستم از پلکانها بالا روم که ناگهان با کمک سهر جادو دیوار باز شد و جنوارد قصد گردید و به محض ورود با نهایت خشم از شاهزاده پرسید چه اتفاقی افتاده که مرا احسار کردی؟ حالت دل به هم خودگی به من دست داد. و این بکری شراب را برداشتم و مقداری از آن نوشیدم که حالم بهتر شود شاید دو سه جوره از آن نوشیدم که حالت سرگیجه به من دست داد و بی اختیار به خواب رفتم و در حالت از خود بیخبری پایم به تلس اصابت کرد آن را شکست و این بود که تو خبردار شدی جن با شنیدن سخنان فریاد براورد تو دروغ میگویی حتما کسی نزد تو بوده است که تنم با خود را در اینجا جا گذاشته اینها قبلا در اینجا نبود شاهزاده با من هم اینها را در اینجا ندیده بودم ممکن است خودت قبلا این تناب و تبر را اینجا آورده ای و یاد از دفته است جن سخنی نگفت و شروع به ناسزا گفتن و کتک زدن شاهزاده کرد که صدای زربه های او و ناله و زایی شاهزاده را می من که شنیدن ناله ها و فریادهای شاهزاده را نداشتم و بسیار هم ترسیده بودم به آهستگی از پلکان بالا رفتم و لباس های گران قیمت را از آورده و همان لباس کهنهی خود را که در روی پلکان گذاشته بودم پوشیدم دریچه را از زمین بلند کردم و بیرون آمدم و دوباره آن را سر جای خود نخواندم. روی آن را هم با خاک پوشاندم و به سوی شهر بازگشتم و هیزمهایی را که گرد آورده بودم با خود به شهر بردم. ولی خود را سرزنش میکردم و با خود میگفتم شاهزاده خود را زندانی میدانست. ولی در این حال زندگی آرام و آسوده ای داشت و از آن راضی بود و من خوشبختی او را با حضور خود از بین بردم و موجب شدم که در اثر نادانی و خودخواهی خود تلس به جن را بشکنم و او را علیه شاهزاده برانگیزانم وقتی به خانه خیاط رسیدم اصلاً نمی دانستم که جن چه بر سر شاهزاده آورده است خیاط از غیبت طولانی هم نگران شده بود فکر کرد مبادا کسی هویتم را شناخته باشد او گفت: من درباره تو و هویت و سرنوشت تو ما هیچکس سخنی نگفتهم ولی باز در دلم تشویش داشتم و از خدا میخواستم که تو را از گزند دشمنان محفوظ نگه دارد. من هم از علاقه و مهمانی خیاط تشکر کردم و برای او اتفاقات آن روز و اینکه چه بر سر تناب و تبرم آمده بود را شهر دادم سپس به اتاق خودم رفتم و هزاران بار خود را سرزنش کردم. و عمل خود را دور از مردانگی و شهامت دانستم. زیرا مهربان و زیبا را در چنگال جن خونخار رها کرده بودم. همینجا که در اتاق نشسته بودم و فکر میکردم، خیاط وارد اتاق شد و گفت پیر مردی که او را نمیشناسم به در خانه آمده و میگوید تو تنها خود را در طول راه که به خانه میآمدی انداخته ای و متوجه نشده ای و او آنها را آورده و میخواهد آنها را به تو برگرداند. خواهش میکنم برای دیدن پیرمرد و گرفتن تناب و تبر نزد او برو با شنیدن این سخنان رنگ از رخم پرید و لرزه بر انجامم افتاد خیات که مرا در این حال دید حیرت کرد و پرسید تو را چه میشود چه چیز تو را به این حالت درآورده است با تردید و بدون جواب دادن به خیاط به دم در رفتم به محض دیدن من جن پرسید این تناب و تبر مال توست قبل از آن که پاسخ دهم کمرم را گرفت و با خود از اتاق بیرون بود و در یک چشم هم زدم به آسمان رفت و آنقدر اوج گرفت که دیگر زمین را نمیدیدم و با چنان سرعتی رفت که نفهمیدم از چه مسیری عبور می کند. بعد از مدتی بسیار کوتاه بر زمین فرود آمد و پای بر ای کوفت و به زیر زمین رفت و داخل همان قصد شد و من را هم با خود به داخل قصد برد و در برابر شاهزاده قرار داد. منظری آوری دیدم که قلبم فشرده شد شاهزاده را به طور کامل اریان دیدم که در خون خود قوطه میخورد و به پهنای صورتش عشق میرید جن رو به شاهزاده کرد و گفت ای بی وفای خاین این مرد همان رفیق توست شاهزاده چشمان بیحال حال خود را به سوی من برگردانید و با حالت غمانگیز گفت من این مرد را نمیشناسم و تا این لحظه او را ندیدم جن فریاد براور چه گفتی؟ این مرد همان کسی است که باعث شده تو به این روز دو دوچار شوی حالا این گونه با او مهربانی کنی؟ و جرأت کنی که بگویی او را شناسی؟ شاهزاده گفت آیا تو مرا مجبور میکنی دروغ بگویم و کسی را که هرگز ام با دروغ خود جانش را به خطر اندازم در این لحظه ساتوری را در آورد و به سوی شاهزاده رفت و به او گفت اگر تو این مرد را نمی‌شناسی پس این ساتور را بگیر و او را بکش شاهزاده گفت چگونه از من انتظار کشتن کسی را داری که نمی و مرا وادار به کشتن چنین کسی می من آنقدر ناتوانم که قدرت در دست گرفتن ساتور را ندارم و تازه اگر هم قدرت کافی داشتم دل آن را نداشتم که بیگناهی را به قدر رسانم. آن هم بیگناهی که به هیچ وجه او را نمی شناسم. گفت همین رفتار و گفتار تو دلالت بر این می که تو این مرد را می و او را دوست داری و به من خیانت کردی آنگاه جن متوجه من شد و پرسی تو این زن را می شناسی و اگر تو راست میگویی پس این ساتور را بردار و او را بخش آن وقت من هم تو را آزاد می کنم و مطمئن می شوم آنچرا که گفتی از روی حقیقت بوده است من با تمام وجودم ساتور را از افید گرفتم و به شاه ساده گفتم خیال نکن که من می توانم انسان بی گناهی را بی جان کنم انسانی که به خاطر جان من جان خود را به خطر می اندازد به من میآموزد که من هم باید جان خود را به خطر اندازم آنگاه ساتور را به سوی پرتاب کردم و شاهزاده که از شدت سوز و درد زخمی که در بدن داشت به خود میپیچید نگاهی نگاه تشکان به من کرد و خواست به من بفهماند که مفهوم سخنان مرا درک کرده است و منظورم را فهمیده است آنگاه رو به جن کردم و گفتم من باید آدم پست و فرومایه‌ای باشم که بخواهم جان انسان‌های بیگناه را بگیرم خصوصا جان چنین بانوی فداکاری که با فدا کردن جان خود می‌خواهد جان مرا نجات دهد اینک این من و این تو هر کاری دلت می‌خواهد درباره من انجام بده محال است من دستور وحشیانه تو را انجام دهم جن که سخنان مراشنی گفت بسیار خوب حالا شما هر دو میخواهید نشان دهید بیش از من شهامت و شجاعت دارید الان به هر دوی شما نشان خواهم داد که من هر کاری را بخواهم می توانم انجام دهم این را گفت و ساتور را از روی زمین بلند کرد و با یک ضربت یکی از دستهای شاهسوده را قطع کرد شاهسوده که از شدت خونریزی و جراحات متعدد دیگر رمق نداشت فقط توانست که با دست دیگرش از من وداع کند شاهسوده بر اثر زغبهای قبلی آنقدر خون از بدنش رفته بود که بعد از دو سه لحظه بعد از قطع شدن دستش به حالت بیهوشی افتاد و دارفانی را ویدا گفت. آنگاه جن به سخن درآمد و گفت این بود سزایی زنی که به من خیانت کرد ولی من در حال حاضر تو را نمیکشم و به صورت یکی از حیوانات مانند سگ، میمون، شیر و یا پرنده در می آورم. خودت انتخاب کن کدان یک را ترجیح می دهی؟ پس از اون که سخنان جن پایان گرفت از او سپاسگزاری کردم که قصد دارد مرا نخوشد و به او گفتم مرا ببخش و مانند مردی رفتار کن که در کمال بزرگواری و جوان مردی همسایه خود را که به او نفرت ای داشت و به زندگی او حسادت می مورد بخشش قرار داد و نام این مرد بزرگوار رو بخشنده در تمام تاریخ به ثبت رسید جن که سخنان مرا شنید گفت داستان این مرد را برایم تعریف کن. گفتم بسیار خوب اینک ای پادویه بزرگوار گفتر این داستان موجب ملال خاطر شما نشود و گفتار من رو نوعی بی‌ادبی به شما نیاورید داستان مرد حسود و کسی که مورد حسادت او بود در یکی از شهرهای بزرگ دو همسایه دیوار به دیوار در کنار هم زندگی میکردند. یکی از این دو همسایه نسبت به همسایه دیگر حسادت می‌ورزید و از او نفرت بسیار داشت همسایه‌ای که خود را مورد نفرت و حسادت احساس می‌کرد، سعی می‌نمود که به همسایه خود مهربانی و خوبی های بیشتری کند تا شاید نظر او را درباره‌ی خود تغییر دهد. این روش هم در رفتار نفرت‌آمیز همسایه تغییری نداد و سرانجام خانه خود را فروخت و با پولی که به دست آورده بود، خانه‌ی دیگری که زیاد هم از محل اولی دور نبود، خریداری کرد و به آنجا رفت. خانه‌ی که او خرید با مرکز شهر نیم فرسنگ بیشتر فاصله نداشت. و اعطرافه آن را باقی زیبایی پوشانده بود خانه راحتی بود و حیات وسیعی هم داشت که در گوشه ای از آن چاه قدیمی متروکی هم دیده میشد. این مرد نیکسیرت بعد از سخونه در محل تازه لباس ددشان را پوشید و در واقع زندگی را به تنهایی و دور از مردم و هیهوی شهر ادامه داد و ضمناً چندین اتاق هم در آنجا بنا کرد که درزیشان دیگر در آنجا زندگی کنند. بدین ترتیب و به مرور زمان گروهی از دزیشان دور این مرد گرد آمدند و جمعیت دراویش تشکیل گردید و خانه او به صورت خانقاهی در آمد. کردن کردان نیک این مرد و دستگیری او از اشخاص تنگ دست همه را به سوی او متوجه ساخت تا جایی که شهرت نیکوکاری او به گوش داروغه شهر هم رسیده بود. این مرد مورد احترام و ستایش همه مردم قرار گرفت مردم گروه گروه از نقاط دور دست برای دیدن او به منزلش می آمدند تا نیاز خود را از او بگیرند. بدین ترتیب که او برای آنها دعا کند و سلامتی و رفاه برایشان از پروردگار متعال طلب کند. آن کسانی هم که می آمدند تا با او در همه خانه زندگی کنند، از برکات نیت خوب او داستان‌ها تعریف میکردند. آوازه شهرت این مرد همه جا و حتی به شهری هم که قبلا در آنجا با همسایه‌ی خود زندگی می کرد رسید. و همسایه حسود آگاه شد که همسایه سابق او خانگاهی درست کرده و همه دراویش در زیر فرمان او هستند و مورد توجه و احترام همه مردم و اهالی شهر قرار گرفته است. این همسایه بجنس و حسود که نمی حسن شهرت آن مرد خوش جنس را بر هم هموار کند تصمیم گرفت به خانه او رود و او را از میان بردارد. در یکی از روزها به خانگاهان همسایه سابق وارد شد و مرد میکوسرش به او خوشامد آمد گفت و بسیار خوشحال شد که همسایه او بعد از مدت ها با او بر سر مه در آمده و به دیدنش شتافته است مرد بر جنس به مرد میکوسرت گفت برای یک کار مهمی نزد تو آمدم و باید در خلوت با تو گفتگو کنم به این بهانه او را از اتاق به حیاط خانه برد و صحبت به کنار همان چاه قدیمی رسیدند مرد بر جنس که می دید کسی او را نمی بیند ناگهان مرد خوش نیت را به درون چاه هل داد. مرد حسود بعد از آنکه مرد بیگناه و نیکندیش را در چاه خانهرش تنگگوون کرد بدون معطلی از خانقاه بیرون شد و به خانه ای خود برگشت. او خیلی شاد بود که آنچه را دلش میخواست انجام داده است اما نمیدانست که دچار اشتباه بزرگی شده و افتادن آن مرد در این چاه صدمی به او وارد نکرده است. زیرا در این چاه قدیمی پریها و جنهان زندگی میکردند. و این مرد خوش نیت را که به همه نیکی میکرده دوست داشتند و امواله خدمت به او بودند همین که مرد در چاه میافتد پریان او را با ملایمت و نرمی به ته چاه میرسانند. مرد نیکسرشت سرشت احساس کرد که راحت به ته چاه رسیده بدون آنکه کسی به او کمک کرده باشد ولی حس می کرد یک نیروی نامرئی به یاری او شتافته و صدایی به گوشش رسید که خطاب به شخص دیگری که او هیچ کدام را نمیدید میگفت. می که این مرد چه انسان درستگاری است و ما او را به خاطر کردان کشیاری کردیم و نگذاشتیم جانش را از دست بدهد صدای دیگری شنیده شد که می نه آن وقت صدای اولی پاسخ داد در این صورت باید برایت بگویم این مردی که به او کمک کردیم از لحاظ نیکوکاری و یاری به مردم نیازمند مانند ندارد و همه مردم او را دوست دارند و به او احترام میگذارند. او قبلا در شهر زندگی کرد که همسایهاش به او حسادت و دشمنی می‌ورزید. به این جهت به این شهر آمد و در این مدت توانسته با رفتار نیکش خود را در دل همه مردم جای دهد و کسی در این شهر نیست که او را نشناسد. او به این شهر کوچ کرده است تا دیگر نفرت و حسادت همسایهاش برانگیخته نشود. اما او چنان حس احترام و شناسی مردم را به سوی خود جلب کرده که همان مرد حسود و تحمل شهرت و محبوبیت این مرد را نداشته و برای از بین بردن او به این شهر آمده و مرد بیگناه را در چاه انداخته است. اگر ما به یاری او نشتاخته بودیم جان خود را از دست داده بود. شهرت این مرد تا آنجا بوده که سلطان با وجودی که در شهر مجاور زندگی می کند می میخواهد از این مرد بازدید کند و از او بخواهد که برای شاهزاده خانم دختر سلطان به درگاه خدا و نیایش کند. صدای دیگر پرسید برای چه ش خانم به دعای این مرد احتیاج دارد؟ صدای اول پاسخ داد برای اینکه او زیر نفوزظ پریان و جنها قرار گرفته. منظورمان است که زیر نفوز و آزار جن معروف میمون قرار گرفته که عاشق دلباخته شاه خانم است اما من میدانم که این مرد پارسا چگونه شاهزده خانم را از این ناراحتی رهایی خواهد بخشید بگذارید تا برایتان بگویم این مرد پارسا در خانقاه خود گربه‌ای دارد که سیاه رنگ است و در ان دوم دم گربه دایره سفید رنگی به اندازه یک سکه وجود دارد که چنانچه هفت دانه از موهای گربه را که در این قسمت سفیدی قرار گرفته از دم او بردارند و در آتش بسوزانند و دودی را که از آن به هوا می رود دور سر شاهزاده بگردانند نه تنها شاهزاده درمان می شود بلکه دیگر میمون به سراغ او نخواهد رفت مرد پارسا این سخنان رو شنید و بعد از این گفته شنود سکوت در سراسر سر چاه تاریک سنگینی کرد. وقتی صبح روشنایی پدیدار شد ای در کف چاه دید که به خارج راه داشت از آنجا بیرون آمد و به خانقاه رفت سایر درویش‌ها که از ما پدید شدن ناگهانی او نگران شده بودند با دیدن او بسیار شاد شدند مرد پارسا آنچرا که بر سر او آمده بود برای آنان شهادت تونی نکشید که گربه سیاهی که در چاه درباریان اشاره شده بود در اتاق ظاهر شد مرد پارسا دید که گربه خود را به او میمالد و دور او میگردد مرد گربه را بغل کرد و از همان دایره سفید رنگ هفت دان موی گربه را برگرفت و آن را در گوشه پنهان کرد هنوز آفتاب کاملا همه جا را روشن نکرده بود که سلطان با ملازمان و اثران خود در جلوی خانقاه درویش توقف کردند آنگاه سلطان ملاقات مرد پارسا رفت درویش به سلطان خوشامد گفت و با مهربانی با او سخن گفت آنگاه سلطان گفت ای مرد پارسا لابد میدانی برای چه به اینجا آمدیم. مرد گفت آری ای شهریار برای من مایه سربلندی است که قلبه مرا با آمدن خود روشن کرده من با کمال میل میگوشم که با خواست خداوند بزرگ دختر شما را درمان کنم ولی خواهش دارم دستور فرمایید شاهزاده خانم را به خانقاه بیاورند سلطان به سرکرده نگهبانان دستور داد شاهزاده خانم را به آنجا بیاورند آنگاه رو به مرد پارسا کرد و گفت اگر بتوانی دخترم را از این ناراحتی رهایی بخشی زندگی تازهی به من ارزانی ای که هرگز چنین مهربانی بزرگی را فرموش نخواهم کرد و خود را همیشه مدیون تو خواهم دانست مرد پارسا گفت نگران نباشید به خواست خدا شاهزادهخانوم تندرستی کامل خود را باز خواهد یافت بعد از مدتی خانم با نقابی بر چهره و با همراهی ندیمه هایش و همچنین دشخیم درباری وارد خانقاه شد مرد دستور داد تا یکی از همراهان ظرف کوچکی را بالای سر شاهزاده نگه دارد در این هنگام او موهای گربه سیاه را از لای پارچهای درآورد و آن را در ظرف گذاشت و زغال افروخته را روی آن گذاشت نوهای گربه در همان لحظه سوختند و دودشان به هوا برخواست. ناگهان میمون فریادی کشید و بدون آن دیده شود از شاهزاده خانوم خانم دور شد و شاهزاده هم بلافاصله فاصل نقاب از چهره برداشت تا ببیند در کجا این مراسم انجام گرفته است و در همان حال میپرسید: من در کجا هستم و اینجا کجاست؟ ستون که دید دخترش به حال عادی برگشته و همه چیز را به خوبی مستجبه میشود خوشحال شد. و از سکه شادی در پوست خود نمی گنجید. صورت دختر را غرق در بوسه کرد و بعد مرد پارسا را بوسید و شوخی ایزد را به جای آورد و رو به امیران و بزرگانی که به همراه آمده بودند کرد و پرسید: پادش چنین خدمتی را چگونه باید داد؟ همه بزرگان و امیران گفتند: حضرت سلطان، چنین مندی خدمتگزاری سزاوار دامادی سلطان را دارد. سلطان پاسخ داد: اتفاقا من هم همین تصمیم را داشتم و از این ساعت به بعد او را به دامادی خیش میپذیرم مراسم برگزار شد و مرد پارسا به دامادی شاه برامد اتفاقا بعد از چند ماهی سلطان جان به جانافرین تصمیم کرد و چون وارث پسری نداشت رهبران دینی و عمرای لشگری شور کردند و بعد از نظر سرانجام همیگی قبول کردند که این مرد پارسا داماد سلطان شایسته ترین جانشین برای سلطنت می‌باشد و او را وارث تاج و تخت و پادشاهی کشور اعلام کردند. بعد از آنکه مرد پارسا بر تخت شاه نشست و به اداره کشور پرداخت تا آنجا که می‌تواند با عدالت و انصاف با همه رفتار می‌کرد. روزی در میان درباریان و وزرا و عمرای خود در شهر مشغول حرکت بود و جمعیت برای تماشای او صف کشیده بودند. در میان جمعیت چشمش به مرد بدندیش و حسود که همان همسایه سابق او بود افتاد. فورا یکی از بزرار را صدا زد و در گوش او آهسته گفت برو آن مرد را بیاور اینجا اما به ترسیبی که او نترسد. وقتی مرد حسود را نزد او آوردند دستور داد یک سکه طلا از خزانه کشور به او دهند و پنج بار از گرانترین کالاها و اجناس که در انبار پادشاهی وجود دارد همراه او کنند. و او را با گروهی از نگهبانان به خانه و شهرش حفاظت کنند. بعد از آنکه سلطان دستوراتش انجام شد، به مرد حسود خدا نگهدار گفت و به گردش خود با همراهانش ادامه داد. وقتی من این داستان را برای جن تعریف کردم، هیچ تأثیری در حال و وضع او نکرد. جن گفت: من فقط می توانم از کشتن تو صرف نظر کنم، ولی نمی توانم تو را آزاد کنم و به حال خود خودت بگذارم. به هر حال با جادوی خود شکل تو را تغییر خواهم داد. جن مرا بلند کرد و با خود به سوی آسمان پرواز داد و اوج گرفت و به قدری بالا رفت که زمین ماننده ابر سفیری به نظر می آمد بعد به سوی پایین آمد و در قله کوه بلندی مرا رو روی کوه گذاشت بعد مشتی خاک از زمین برداشت سخنانی گفت که من مفهومش را نفهمیدم و به من گفت از شک انسان خارج شو و خاک را به سوی من پاشید و گفت به شکل میمون درای بعد از گفتن این ورد فورا از نظر پنهان شد و من که به صورت میمون در آمده بودم یکی و تنها در سرزمین و نقطه ناشناسی باقی ماندم و غرق در قصه و اندور شدم که خدایا کمکی کن من با این شکل در دیار ناشناس چه کنم و کجا برمم این نبود جزان که از قلعه کوه به سوی پایین کوه حرکت کنم اما میدانستم که با سرزمین پدری خود فاصله بسیار دارم بعد از مدتها پیاده‌روی و بیابان پیمایی سرنجم از دور دریایی دیدم و خود را به ساحلش رساندم و در آنجا تنه درختی را از جنگل بیرون کشیدم و شاخه‌های آن را قطع کردم و بر روی تنه درخت سوار شدم و شاخه‌ها را همچون پارو به کار گرفتم بعد از مدتی به نزدیک کشتی که در دریا حرکت می‌کرد رسیدم ناخدا و مسافرین از دیدن من با آن شیک در روی تنه درخت حیرت کردند و مرا به عرشه کشتی بردند و دور مرا گرفتند بعضی مسافرین میگفتند این را باید به دریا انداخت چون بد نیوم نست بعضی ها باید این را کشت من که به صورت میمون قادر به حرف دادن نبودم به هر سو می پریدم و با حرکت و نگاه های آمیز خود التماس میگردم که مرا نخوشند وقتی ناخدا روی عرشه کشتی آمد به سوی او رفتم خود را به پای او انداختم و گریه کردم او دلش به آمد و را تحت حمایت خود قرار داد و به مسافرین گفت حق ندارید که آزاری به این حیوان بیگناه برسانید. ناخداگاه خود از من مراقبت میکرد و محبت فراوانی نشان میداد. من هم با زبان بی زبانی به یاری نگاه و حرکات خودم حالت تشکر را قدردانی به او نشان میدادم. پنجاه شبانه روز در دریا به سفر ادامه دادیم. خوشبختانه باد سااعی در طول این مدت میوزید و کشتی را در مسیر خود در دریا پیش می برد به بندرگاهی رسیدیم و کشتی لنگر انداخت آنجا شهر بزرگی بود و از قرار معلوم پایتخت تخت نیرومندی بود قایقهای بسیاری اطراف کشتی ما را گرفته بودند و همه آنها ممنوع و سندشین بودند تعدادی از آنها به استقبال مشافرین که از دوستان آنها بودند آمده بودند تا سلامت رسیدن آنها را تبریک گویند تعدادی دیگر آمده بودند تا درباره دوستان خود که در بندر محل حرکت کشتی باقی مانده و سوار نشده بودند، تحقیقاتی بنمایند و تعدادی از ها هم فقط برای کنجکاوی و دیدن کشتی آمده بودند. در میان سایر مردم که به کشتی وارد میشدند گروهی از مأمورین و افسران سلطان بودند که اعلام کردند ما به نام سلطان به این کشتی آمدیم که با همه بازرگانان که مسافرین این کشتی هستند آشنا شویم. و از اینکه به سلامت سفر دریاییشان را به پایان رساند و مراجعه کردند خوشحالی خود را بیان کنیم این صفحه بزرگ کاغذ را سلطان دادهاند تا هر یک از شماها نمونه خط خود را در روی آن بنویسید تا بهترین و زیباترین آنها را سلطان انتخاب کند علت این اقدام آن است که سلطان نخوش‌ویزی داشت بسیار خوشنویس و دانا که چندی پیش درگذشت و امور کشور از لحاظ مکاتبات و فرامین در معطل مانده تا کسی کسی به خوشنویسی نخص وزید باشد یافت نشده است. خیلی ها خط نوشتند اما به خوبی خط او نبوده. بازرگانان هر یک عبارتی نوشتند. من هم جلو رفتم که بنویسم. همه فریاد کردند مواضح باشید که این میمون کاغذ را پاره می و یا آن را به دریا می اندازد. فریاد کرد بگذارید بنویسد. اگر این میمون فقط کاغذ را خط خطی کند او را تنبی خواهم کرد. و اگر احیانا توانست خوش نمیسی کند او را تحصیل می و به فرزندی خود انتخابش خواهم کرد من کاغذ و قلم را گرفتم و شش نوع خط که در عدب عرب مرفست نوشتم و آن هم در وصف و تعریف پادشاه خط من تنها خوشتر از خط تمام بازرگانان بود بلکه بازرگانان تا آن لحظه چنان دستمون خط و شیوه های مختلف نگارش را ندیده بودند وقتی نوشتن من به پایان رسید. افسران شاهی توما را گرفتند و به دربار سلطان مراجعت کردند وقتی سلطان خوشنویسی مرا دید به افسران دستور داد که بهترین اسبهایش را از استبل شاهی آماده کنند و افسار گرانبها و رکاب های طلا و زربفت روی گردهٔ اسب بیاندازند و فورا بروند و مردی که توانسته این شش اسلوب خط را بنویسد فورا به حضورش بیاورند افسران از سخنان شاه به خنده افتادند و سلطان از خنده و بیحرمتی آنان کشکین شده، فریاد برابر چرا میخندید؟ آنها پاسخ دادن سلطان به سلامت بادا. میویسنده مب... این خطوط خوش انسان نیست بلکه میمون است. سلطان خروشید و گفت چه میگویید؟ مگر عقل خود را از دست دادید یا هزیان میگویید؟ افسران گفتند ما عقل خود را از دست ندادیم. اما با چشمان خود دیدیم که چگونه میمون تومار کاغذ و قلم را در حضور ناخدا و سایر بزرگان گرفت و با مهارت خاصی این خطوط را نوشت سلطان فرمان داد بیدرنگ بروید و این میمون خوشنویس را نزد من آورید افسران شاهی به کشتی آمدند و فرمان کتبی سلطان را به ناخدا نشان دادند ناخدا گفت فرمان شاه اطاعت می شود آنها مرا از ناخدای کشتی تحویل گرفتند و قبلا لباس گرانبهایی که به فرمان سلطان برای من آورده بودند به من پوشاندند و مرا را از کشتی به من در و در آنجا بر روی است زیبایی که سلطان فرستاده.